16. کیش کاپیتالیزم پول هم برای بنای امپراتوری ها و هم برای پیشرفت علم نقش اساسی داشته. اما آیا پول هدف نهایی این پروژه ها بوده یا شاید فقط یک ضرورت خطرناک بوده؟ درک نقش حیاتی اقتصاد در تاریخ معاصر آسان نیست. در خصوص اینکه پول چگونه سرمنچه شکلگیری دولت ها و ویرانیشان شده، افقهای های نوینی گشوده، میلیونها نفر را به بردگی کشیده، چرخهای های صنعت را به گردش درآورده و صدها گونه از موجودات زنده را به انقراض کشیده، کتاب ها نوشته شده. اما برای درک تاریخ اقتصاد نووین، ناگزیر از درک تنها یک واژه هستیم: رشد. در شادی و غم و در خوشی و ناخوشی، اقتصاد نوین همچون نوجوانی مستعد رشد کرده. این اقتصاد هرچه را بیابد می و سریتر از آن که به حساب کنی وجب به وجب رشد می کند. اقتصاد در طولانی ترین دوره تاریخ رشدی نکرد. تولید جهانی افزایش یافت اما این به دلیل افزایش جمعیت و استقرار در سرزمین های مسکونی جدید بود. ولی تولید سرانه ثابت ماند. در عصر نوین همه چیز تغییر کرد. در سال 1500 تولید جهانی کالا و خدمات معادل 250 میلیارد دلار بود. امروز در حدود 60 تریلیون دلار است. مهمتر این که در 1500 تولید سرانه سالانه به طور متوسط 550 دلار بود، در حالی که امروز هر مرد، زن و کودک به طور متوسط 8800 دلار در سال تولید می کند. چه چیزی پشت این رشد سرسام آور است؟ اقتصاد یک موضوع پیچیده است. برای درک بهتر اجازه دهید مثالی ساده بیاوریم. ساموئل گریدی گذار زیرکی است که بانکی را در ال دورادو کالیفرنیا می کند. ای ای استون پیمانکار کوشایی است که در ال دورادو اولین کار بزرگش را به انجام می‌رساند و دستمزد یک میلیون دلاری خود را نقدن دریافت می‌کند. او این وچ را به عنوان سپرده در بانک آقای گریدی واریز می‌کند. بانک اکنون یک میلیون دلار سرمایه دارد. در همان زمان، جین مکدوگنات یک خانوم آشپز توحید است، اما مجرب در ال درودست که یک فکر تجاری مناسب به ذهنش می‌رسد. در قسمتی از شهر نانوایی خوبی وجود ندارد اما او پول کافی برای تهیه تجهیزات لازم برای فرهای بزرگ صنعتی ظرفشویی کارد و زروف ندارد او به بانک مراجعه می‌کند و فکر تجاری خود را برای گریدی تشریح می‌کند و او را متقاعد می‌کند که یک سرمایه‌گذاری ارزشمند بکند گریدی با ایجاد یک اعتبار یک میلیون دلاری برای حساب بانکی او این مبلغ را به او وام می‌دهد جین مکدوگنات اکنون ای ای استون پیمانکار را استخدام میکند تا یک نانوایی برایش بسازد و آن را به وسایل لازم مجهز کند. اجرت این کار یک میلیون دلار است. وقتی مکدوگنات این وچ را با چکی که از حساب خود میکشد میپردازد استون آن مبلغ را در حساب بانکی خود در بانک گریدی می خوابند. بنابراین استون چقدر پول در بانک دارد؟ بله، دو میلیون. در حال حاضر چقدر وجه نق در گاف صندوق بانک وجود دارد؟ درست است، یک میلیون ماجرا اینجا خاتمه نمییابد طبق عادت معمول پیمانکاران، دو ماه بعد از شروع کار استون به مکدوگنات اطلاع میدهد که به علت مشکلات و مخارج غیرقابل پیشبینی هزینه ساختن نانوایی در حقیقت دو میلیون دلار است خانم مکدوگنات ناراضی است اما نمیتواند کار را در این مرحله متوقف کند او یک بار دیگر به بانک مراجعه میکند و آقای گریدی را متقاعد میکند کند که به او یک وام جدید بدهد و آقای گریدی یک میلیون دیگر به حساب خانوم واریز میکند. او این مبلغ را به حساب بانکی آقای استون می ریزد حال چقدر در حساب استون پول است؟ 3 میلیون دلار. اما چقدر پول در بانک وجود دارد؟ هنوز همان یک میلیون دلار. در حقیقت همان یک میلیونی که از ابتدا در بانک بوده قانون بانکی آمریکا اجازه می‌دهد که بانک این کار را هفت بار دیگر تکرار کند. در این صورت پیمانکار سرانجام ده میلیون دلار در حسابش خواهد داشت، اگرچه بانک کماکان یک میلیون دلار موجودی دارد. بانک ها مجازند ده برابر موجودی واقعی خود پول قرض بدهند که این به این معنی خواهد بود که 90 درصد از تمامی پولی که در حساب های بانکی ماست ای به صورت سکه و اسکناس واقعی ندارد. اگر تمام کسانی که در بانک برکلی حساب دارند، ناگهان بخواهند پولهایشان را از حساب بیرون بکشند، بانک بلا فاصله ورشکست خواهد شد، تا اینکه دولت دخالت کند و آن را نجات دهد. همین امر در مورد بانک لوید، دوچه بانک، سیتی بانک و تمام بانک های دیگر دنیا هم صدق می کند. این شبیه به طرح پانزی است. آیا اینطور نیست؟ اما اگر این تقلب است، پس تمام اقتصاد نوین بر تقلب استوار است. واقعیت این است که این یک نیرنگ نیست بلکه نشانه بارزی از توانایی های تخیل انسانی است. آنچه که بانک ها و تمامی اقتصاد را قادر می کند تا باقی بمانند و شکوفا شوند، اعتماد ما به آینده است. این اعتماد تنها پشتوانه بیشتر پول های دنیا است. در مثال نانوایی، اختلاف میان موجودی بانکی پیمانکار و حجم پول موجود در بانک، نانوایی خانم مکدوگنات است. آقای گریدی موجودی بانک را به دارایی تبدیل کرد، به این امید که روزی به سوددهی دهی برسد. نانوایی هنوز یک نان هم تولید نکرده، اما مکدوگنات و گریدی پیش بینی می‌کنند که تا یک سال روزانه هزاران نان و شیرینی و کیک فروخته خواهد شد و سود تولید خواهد کرد. آنگاه خانم مکدوگنات قادر خواهد بود وام گرفته شده را به اضافه بهرهاش بازپرداخت کند. اگر در آن مقطع آقای استون تصمیم بگیرد موجودی خود را از بانک بیرون بکشد، گریدی قادر خواهد بود آن وجه نقد را در اختیارش بگذارد. بنابراین تمامی این پروژه بر پایه اعتماد به یک آینده خیالی استوار است. امیدی که خانم کارافرین و آقای بانکدار به نانوایی رویاییشان در کنار اعتماد پیمانکار به توانایی آتی بانک در پرداخت دیون دارد. تا اینجا دیدیم که پول چیز شگفت انگیزی است زیرا می تواند تجلی چیزهای بیشمار متفاوتی باشد و هر چیزی را تقریبا به هر چیز دیگری تبدیل کند. با وجود این، این توانایی پیش از دوران نوین محدود بود. در اغلب موارد، پول می توانست تنها تجلی و تبدیل کننده چیزهایی باشد که در زمان حال وجود داشتند. این امر محدودیت شدیدی را بر روش تحمیل می کرد زیرا تأمین سرمایه برای فعالیت های تجاریاتی را مشکل می ساخت. یک بار دیگر نانوایی را در نظر بگیرید. آیا اگر پول فقط تجلی چیزهای واقعا موجود می بود، مکدوگنات می توانست نانواییش را بسازد؟ طبعاً خیر. در حال حاضر او آرزوهای زیادی دارد اما منابع موجودی ندارد. تنها راه برای اینکه او اون را بسازد این است که پیمانکاری بیابد که بخواهد امروز کار کند و اجرتش را تایی چند سال دریافت کند. یعنی اگر و وقتی نانوایی شروع به کسب سود کند. اما افسوس که چنین پیمانکارانی کم یابند. بنابراین دستان خانم کارافرین ما بست است. بدون وجود نانوایی او نمیتواند تواند کیکی به پزد و پول درآورد، بدون پول نمیتواند تواند پیمانکار را استخدام کند. بدون پیمانکار نانوایی هم در کار نخواهد بود و شرطگ هزاران سال در این مخمسه گرفتار بود در نتیجه اقتصاد منجمد باقی ماند راه خلاصی از این مخمسه فقط در اصر نوین با ظهور نظام جدیدی بر پایه اعتقاد به آینده بود در این نظام، انسانها توافق کردند که کالاهای خیالی را، یعنی کالاهایی که اکنون وجود ندارند، با نوعی پول به اسم اعتبار یا کردیت ارائه دهند. اعتبار ما را قادر می سازد تا حال را به بهای آینده بنا کنیم. اعتبار بر اساس این فرضیه بنا شده که منابع آینده ما قطعا بسیار بیشتر از منابع امروز ماست، اگر حال خود را بر موجودی آینده بسازیم انبوهی از موقعیت های شگفتانگیز جدید برایمان به وجود خواهد آمد اگر اعتبار چیز بسیار خوبی است پس چرا کسی پیش از این به فکر آن نیفتاد؟ البته که به این فکر بودند به کاربردن روش اعتباری به شکلهایی همیشه در تمام فرهنگ های شناخته شده بشری حداقل از دوران سومری کهاهن وجود داشته مشکل در گذشته ای نبود که استفاده از اعتبار به ذهن کسی نرسیده بود بلکه این بود که مردم به ندرت تمایلی برای افزایش اعتبار خود نشان میدادند زیرا امیدی به این نداشتند که آینده بهتر از حال بشود آنها عموما فکر میکردند که گذشته بهتر از حال بوده و آینده باز هم بدتر خواهد بود یا در بهترین حالت تغییری نخواهد کرد به بیان اقتصادی گمان می کردند که حجم کل ثروت اگر هم رو به کاهش نباشد، محدود است. از این رو مردم فکر می کردند که نامعقول است فرض کنند که خودشان شخصا یا پادشاهی هایشان یا کل دنیایی که در آن میزیستند در ده سال آینده ثروت و رفاه بیشتر تولید کنند. فعالیت تجاری به نظر یک بازی نبرد و نباخت جلبه می کرد. سود یک نانوایی معین میتوانست طبعا بیشتر شود اما به شرط اینکه فقط نانوایی مجاور ضرر کند شهر ونیز میتواند چکوفا شود اما فقط به شرط رکود شهر جنوا شاه انگلیس میتوانست خود را سروت منتر کند اما به شرط تاراج شاه فرانسه شما میتوانستید کیک را به اشکال متعدد گوناگونی تقسیم کنید اما خود کیک هرگز نمیبایست بیشتر شود به این دلیل بود که فرهنگ‌ها نتیجهگیری کردند که کسب درآمد زیاد گناه است. به طوری که عیسی گفته وارد شدن یک شطور از سوراخ سوزن راحتتر از وارد شدن یک ثروتمند به قلم قلمرو پروردگار است. اگر اندازه کیک ثابت هست و من یک تیکه بزرگ از آن را بردارم، این به این معنی است که از سهم دیگری برداشتم. عقلیان ناچار بودند برای جبران عمل شریر خود بخشی از داراییشان را خیرات کنند اگر اندازه کیک جهانی ثابت می بود پس جایی برای اعتبارات نبود اعتبار ما به تفاوت میان کیک امروز و کیک فرداست. است اگر کیک برای هر دو زمان یکی است پس اعتبار به چه کار می آید اعتماد به نانوا یا شاه برای بازپرداخت توانست خطرناک باشد مگر اینکه باور داشته باشیم که آنها قادر خواهند بود از رقبای خود بدوستند. به این دلیل وام گرفتن در دنیای پیشا مشکل بود و اگر کسی وامی می حجم آن کم، کوتاه مدت و دارای بهره بالا بود از این رو باز کردن یک نانوایی جدید برای کارآفرینان جدید دشوار بود و شاهانی که می‌خواستند قصری بسازند یا جنگی براهندازند، چاره جزین نداشتند که هزینه های لازم را از طریق بالا بردن مالیات ها و عوارس فراهم کنند. تا زمانی که توده ها متی بودند، اوضاع بر وفق مراد شاهان پیش می‌رفت. اما اگر زن خدمتکاری به فکر بلند پروازانه یک نانوایی می و میخواست ترقی کند، معمولا فقط میتوانست کف آشپزخانه سلطنتی را به و خواب ثروتمند شدن را ببیند. این یک بازی باخت باخت بود. از آنجا که اعتبار محدود بود مردم برای تامین هزینه های یک فعالیت اقتصادی جدید با مشکل روبرو می و چون فعالیت های اقتصادی جدید اندک بود اقتصاد رشد نمیکرد. و چون اقتصاد رشد کرد، مردم هم هیچ امیدی به رشد اقتصادی نداشتند و آنها که سرمایه داشتند تمایلی برای وام دادن نداشتند. بنابراین این رکود اقتصادی یک حقیقت مسلم بود. کیک در حال رشد. سپس انقلاب علمی و اندیشه پیشرفت از راه رسید. پایه و اساس این اندیشه این است که اگر نادانی خود را بپذیریم و منابعی را صرف تحقیق کنیم، اوضا بهتر خواهد شد. این اندیشه خیلی زود به زبان اقتصادی ترجمه شد. کسی که به پیشرفت باور داشته باشد، اعتقاد دارد که اکتشافات جغرافیایی، اختراعات تکنولوژیک و تحول در شیوه‌های سازماندهی می حجم کلی تولیدات انسانی، بازرگانی و رفاه را افزایش دهند. راه‌های تجاری نوینی می توانستند در اقیانوس اطلس گشوده شوند بدون آنکه راه‌های قدیمی اقیانوس هند را تخریب کنند. کالاهای جدیدی می توانستند تولید شوند بدون آنکه تولیدات قدیمی را کاهش دهند. برای مثال، فردی می توانست یک نانوایی جدید باز کند که در کیک شکلاتی و شیرینی هلالی تخصص دارد بدون آنکه هایی های را که در پختن نان تخصص دارند ورشکست کند. هر کسی میتواند مزه و زائقه جدیدی پیدا کند و بیشتر بخورد. من میتوانم ثروتمند شوم بدون آنکه شما فقیر شوید. کیک جهان میتواند بزرگتر شود. ظرف 500 ساله اخیر اندیشه پیشرفت مردم را متقاعد کرد تا هرچه بیشتر به آینده اعتماد کنند. اعتماد اعتبار را به وجود آورد. اعتبار شکوفایی واقعی اقتصادی را به همراه آورد و رشد اقتصادی اعتماد به آینده را تقویت کرد و راه را برای اعتبارات باز هم بیش در باز کرد. این یک شب رخ نداد. اقتصاد مسیری پر و نشیب داشت، نه یک سعود مستقیم. اما در دراز مدت با هموارتر شدن دستاندازها، مسیر کلی به بیراه نرفت. امروزه به قدری اعتبار در دنیا وجود دارد که دولت‌ها، شرکت‌های سهامی تجاری و افراد به سادگی می وام وام‌های سنگین و طولانی مدت با بهره پایین بگیرند که بسیار بیشتر از سطح درآمد کنونیشان است. اعتقاد به کیک در حال رشد جهانی به تدریج خصلتی انقلابی یافت. در سال 1776، آدام اسمیت، اقتصاددان اسکاتلندی، کتاب ثروت ملل (The Wealth of Nations) را منتشر کرد که شاید مهمترین بیانیه اقتصادی در تاریخ باشد. اسمیت در فصل 8 جلد اول کتاب این استدلال جدید را مطرح کرد که وقتی یک ملاک، یک نساج یا یک کفاش سود بیشتری از آن چه که برای بقای خود و خانوادهش ضروری است به دست آورد، این مازاد را صرف استخدام دستیاران بیشتری می کند تا سود خود را باز هم افزایش دهد. هرچه سود بیشتری کسب کند تعداد بیشتری را استخدام خواهد کرد. به دنبال آن، افزایش سود کارآفرینان خصوصی پایه افزایش رفاه و ثروت عمومی می شود. شاید این برای ما چندان بدیع نباشد زیرا همه ما در یک دنیای کاپیتالیستی زندگی می کنیم و این استدلال اسمیت را بدیهی میدانیم ما هر روز نمودهای مختلفی از این را در خبرها می میشنویم اما ادعای اسمیت مبنی بر اینکه تمایل خودخواهانه ما برای افزایش سود شخصی بنیان ثروت عبومی است یکی از انقلابیترین عقاید در تاریخ بشر است انقلابی نه فقط از یک چشمنداز اقتصادی بلکه فراتر از آن از یک نگرش اخلاقی و سیاسی آنچه که اسپیت میگوید در واقع این است که طمع چیز خوبی است و قنیتر شدن من به همه سود می‌رساند نه فقط به خود من خودخواهی یعنی دگر خواهی. اسمیت به مردم میآموخت که به اقتصاد به شکل یک وضعیت برد برد نگاه کنند که در آن سود من همزمان سود تو هم هست، یعنی نه فقط اینکه هر دوی ما میتوانیم همزمان از قسمت بزرگتر کیک بهره من شویم بلکه همچنین افزایش سهم تو به افزایش سهم من بستگی دارد. اگر من فقیر شوم تو هم فقیر میشوی، زیرا من نمیتوانم کالاها یا خدمات تو را بخرم. اگر من ثروتمند شوم تو هم ثروتمند خواهی شد زیرا می توانم از تو خرید کنم اسمیت تضاد سنتی میان ثروت و اخلاق را رد کرد و دروازه های بهشت را بر روی ثروتمند گشود ثروتمند بودن اخلاقی است مردم به روایت اسمیت نه با چپاول هم نشان بلکه با افزودن بر اندازه کیک ثروتمند میشوند و وقتی کیک بزرگتر می شود همه از آن بهره مند می شوند بنابراین، این ثروتمندان مفیدترین و خیراندیشترین گروه اجتماعی هستند زیرا چرخهای رشد و توسعه را به نفع همگان به گردش در میآورند. اما همه اینها به این بستگی دارد که ثروتمندان از سودشان برای گشودن کارخانه‌های جدید و استخدام کارکنان جدید استفاده کنند نه آنکه آن را برای فعالیت‌های غیرتولیدی به کار گیرند. بنابراین ترجیعی بند کلام اسمیت این قاعده کلی بود که وقتی سود افزایش میابد، ملاک یا نساج دستیاران بیشتری استخدام میکند. نه اینکه وقتی سود افسایش میابد، خسیصان را در گاف صندوق پسنداز میکند و فقط برای شمردن بیرون میآورد. یک بخش بسیار مهم اقتصاد کاپیتالیستی نوین ظهور یک اخلاق جدید بود که میگفت سود باید دوباره در تولید سرمایه‌گذاری شود. این کار با خود سود بیشتری به همراه می آورد که باز در تولید سرمایه گذاری خواهد شد که به نوبه خود سود باز هم بیشتر ایجاد می کند و الاخر. سرمایه گذاری می تواند در راه های بسیاری صورت گیرد. وسعت دادن محل تولید، ایجاد تحقیقات علمی، ابداع تولیدات جدید. اما همه این سرمایه ها باید تا حدودی تولید را افزایش دهند و تبدیل به سود بیشتر شوند. اولین و مقدسترین فرمان در کیش کاپیتالیسم نوین این است که سود تولید باید دوباره در افزایش تولید سرمایه گذاری شود. به این دلیل است که این پدیده کاپیتالیسم نام دارد. کاپیتالیسم میان سرمایه و سروت تفاوت قائل است. کاپیتال یا سرمایه مرکب است از پول، کالا و منابع که در تولید سرمایه گذاری می شود. اما ثروت یا در زیر خاک دفن می شود و یا در فعالیت های غیر تولیدی مصرف می شود. فرعونی که منابع را صرف یک هرم غیر تولیدی می کند کاپیتالیست نیست. یک دزد دریایی که ناوگان جواهرات اسپانیایی را غارت می کند و آنها را در ساحلی در یکی از جزایر کارائیب دفن می کند کاپیتالیست نیست. اما یک کارگر ساده که بخشی از درآمدش را در بازار بورس سرمایه گذاری می کند یک کاپیتالیست است این تفکر که سود حاصل از تولید باید دوباره برای افزایش تولید سرمایه گذاری شود به نظر پیش پا افتاده جربه می کند اما با این وجود برای اکثر مردم در طول تاریخ ناشنا بوده در دوره های پیشانوین همه گمان می کردند که سطح تولید کمابیش شکسان خواهد بود پس چرا کسی باید سود خود را در تولیدی که علا رقم هر تدبیری چندان قابل افزایش نیست سرمایهگذاری کنند؟ از این رو اشراف قرون وسطا از اخلاق سخاوتمندانه و مصرف خودنمایانه پشتیبانی میکردند آنها درآمد خود را صرف مسابقات زیافتها، جنگها ساختن قصرها و کلیساها و خیریه خیریهها میکردند تنها معدودی از آنها از سود خود برای بازدهی بیشتر املاک خود تولید گندم مرغوبتر و بهتر یا جستجو برای یافتن بازارهای جدید استفاده می کردند. در عصر نوین، جای اشراف گذشته را نخبگان جدیدی گرفتهاند که معتقدین راستین آین کاپیتالیستی هستند. عاملان جدید سرمایه، دوکها و مارکی های گذشته نیستند، بلکه رؤسای هیئت مدیره، معامنگران سهام و صاحبان سنایه هستند. این عناصر با بسیار ثروتمندتر از اشراف قرون گستا هستند، اما بسیار کمتر علاقمند به مصرفگرایی بیرویهند و بخش بسیار کمتری از سود خود را صرف فعالیت های غیرتولیدی می کنند. اشراف قرون وستا لباس رنگارنگی از ابریشم و تلا تن داشتند و اغلب وقت خود را به حضور در زیافتها، جشنها و مسابقات پرزرق و برق سپری می کردند. در مقابل، مدیر راملان نوین افرادی هستند که لباس های متحدل شکل به اسم کچلوار بتند دارند که به آنها هیئت یک دست کلاغ را می‌دهد و وقت کمی برای شرکت در جشن دارند. یک کاپیتالیست خطرجوی معمولی از این جلسه به آن جلسه در شتاب است و میخواهد سر در آورد که سرمایه اش را کجا بکار اندازد و همواره نوسانات بازار بورس و اوراق بهادار را زیر نظر دارد. شاید کوچ‌الوارش گران قیمت باشد و از هواپیمای جت شخصی هم استفاده کند، اما این مخارج در مقایسه با هایش در افزایش تولید ناچیزند. فقط قولهای تجاری نیستند که برای افزایش بهرهوری سرمایه‌گذاری می‌کنند. مردم عادی و نهادهای دولتی هم در همین راستا فکر می کنند. میان اقشار طبقه متوسط چه بسیار گفتگوهای بیپایانی بر سر میز غذا وجود دارد که به سرمایه‌گذاری پساندازها در پورس سهام یا اوراق بهادار یا املاک اختصاص میابد. دولت ها هم تلاش می کنند تا درامدهای مالیاتی را روی فعالیت های تولیدی سرمایه گذاری کنند تا درآمدهای آتی را افزایش دهند. برای مثال تأسیس یک بندر جدید می صادرات کالا برای شرکت ها را تسهیل کند و در نتیجه درآمدهای مالیاتیشان را افزایش دهد و این منجر به افزایش درآمد آتی دولت خواهد شد. دولت دیگری شاید ترجیح دهد بر آموزش سرمایه گذاری کند زیرا افراد تحصیل کرده سنایه پرمنفعت با تکنولوژی پیشرفته را بنامی کنند که بدون آنکه احتیاجی هم به بنادر تجاری گسترده باشد ماریات های زیادی را روانه خزانی دولت می کند. کاپیتالیسم به عنوان یک نظریه درباره کارکردهای اقتصادی شکل گرفت که هم توصیفی و هم تجویزی بود. توصیف میکرد که پول چگونه عمل میکند و این اندیشه را رواج میداد که سرمایه گذاری مجدد سود روی تولید باعث رشد اقتصادی خواهد شد. اما کاپیتالیسم به تدریج به چیزی فراتر از یک آموزه اقتصادی صرف بدل شد. کاپیتالیسم مکنون شامل یک نظام اخلاقی است. مجموعه ای از تعالیم درباره اینکه انسانها چگونه باید فکر کنند، رفتار کنند و فرزندانشان را تربیت کنند. اصل بنیادی کاپیتالیسم این است که رشد اقتصادی کمال مطلوب است یا حداقل مظهر کمال مطلوب است، زیرا ادالت، آزادی و حتی کامیابی همه بستگی به رشد اقتصادی دارد. از یک کاپیتالیست بپرسید چطور میتوان در جاهایی مثل زیمبابوه یا افغانستان ادالت و آزادی سیاسی برقرار کرد و او سخنرانی قرای برایتان خواهد کرد. در خصوص نقش اساسی رفاه اقتصادی و وجود یک طبقه متوسط رشد برای ایجاد مؤسسات پایدار دموکراتیک و نیز لزوم تلقین ارزشهای تجارت آزاد، صرفجویی و خودکفایی در میان قبایل افغانی. این آین جدید نفوذ تعیین کنندهای بر پیشرفت علم نوین هم داشته. تحقیق علمی معمولاً با پشتیبانی مالی دولت یا شرکت خصوصی میسر می شود. وقتی دولت های کاپیتالیست و شرکت‌ها سرمایه ای را برای پروژه های علمی معینی در نظر می گیرند، اولین سؤال این خواهد بود که آیا این پروژه در بالا بردن تولید و سود کمک خواهد کرد؟ آیا به ایجاد رشد اقتصادی کمک خواهد کرد؟ پروژهی که جواب روشنی برای این سوال نداشته باشد، امکان کمی هم برای پیدا کردن پشتیبان مالی خواهد داشت. تاریخ علم نوین نمی تواند وجود کاپیتالیسم را نادیده بگیرد. از طرف دیگر، تاریخ کاپیتالیسم هم بدون در نظر گرفتن نقش علم غیر قابل درک است. باور کاپیتالیسم به رشد بیوقفه اقتصادی مهر خود را بر تقریبا هر آنچه چه که درباره جهان می‌دانیم می‌زند. جامعه ها باید بسیار احمق باشد اگر باور کند که عرضه گوسفند به طور پایان ناپذیر خواهد یافت. با این وجود اقتصاد بشری تهی اصر نوین به طور تصاعدی رشد کرده تنها به لطف کشف یا اختراع جدیدی که دانشمندان هر چند سال یک بار ارائه می دهند. مثل کشف آمریکا، اختراع موتور احتراق داخلی یا تغییر ژنتیک گوسفند. بانک ها و دولت ها پول چاپ می کنند، اما این دانشمندان هستند که بههایی آن را میپردازند. تای چند سال اخیر بانک ها و دولت ها به طور بی روی پول چاپ کردند همه مردم از این میترسند که بحران اقتصادی جاری جلوی رشد اقتصادی را بگیرد پس آنها تریلیون ها دلار یورو و ین بدون پشتوانه چاپ می‌کنند تا اعتبارات سستی را به سیستم تزریق کنند به این امید که دانشمندان متخصصین فنی و مهندسین قبل از ترکیدن حباب با دستاورد بزرگ جدیدی وارد میدان شوند. همه چیز به آنهایی که در آزمایشگاه هستند بستگی دارد. شاید کشفیات جدید در زمینه هایی مثل زیست فناوری و نانو تکنولوژی بتوانند به توانند کاملا جدیدی را به وجود آورند که سود آنها به تواند جوابگوی تریلیون ها اسکناس بدون ای باشد که بانک ها و دولت ها از سال 2008 چاب کردند. اگر آزمایشگاه ها قبل از ترکیدن حباب از پس برآوردن این انتظارات بر ما با دوران بسیار خشن و دشواری روبرو خواهیم شد. کلمب در جستجوی یک سرمایه گذار کاپیتالیسم نه تنها در ظهور علم نووین بلکه همچنین در ظهور امپریالیسم اروپایی نقش تعین کننده ایفا کرد. و این امپریالیسم اروپا بود که در وهله اول نظام اعتباری کاپیتالیسی را آفرید البته اعتبارات در اروپای نوین ابداع نشدند و در تقریبا تمامی جوامع کشاورزی پیشین وجود داشتند و در اوایل اصر نوین ظهور کاپیتالیسم اروپایی به طور تنگاتنگی تنگی به پیشرفتهای اقتصادی در آسیا مرتبط بود. این را هم به خاطر آورید که تا اواخر قرن هجدهم آسیا مرکز قدرت اقتصادی جهان بود به این معنی که اروپاییان سرمایه بسیار کمتری از چینیها، مسلمانان و هندیها داشتند اما در نظام سیاسی اجتماعی چینی، اسلامی و هندی اعتبار فقط نقشی سانوی ایفا میکرد شاید تجار و بانکداران در بازارهای استانبول، اصفهان، دهلی و پکن با منطق کاپیتالیستی فکر می کردند. اما شاهان و جنرالها در قصرها و دژها تاجرین و اندیشه های تجاری را خار می اغلب امپراتوری های غیر اروپایی در عصر اصرنوین را اشغالگران بزرگی مثل نورهاچی و نادرشاه یا گروه های ممتاز دیوانسالار و نظامی در امپراتوری های چینگ و عثمانی به وجود آوردند. این امپراتوری ها جنگ جنگ‌هایشان را با مالیات و غارت تأمین مالی می‌کردند بدون اینکه تفاوت زیادی بین این دو باشد و وابستگی چندانی به نظام اعتباری نداشتند و به منافع بانکداران و سرمایه گذاران توجه چندانی نشان نمیدادند. اما شاهان و جنرال ها در اروپا به تدریج تفکر تجاری را پذیرفتند تا اینکه بازرگانان و بانکداران به طبقه حاکم بدل شدند. پول لازم برای تسخیر جهان به شیوه اروپایی نه با مالیات ها بلکه به طور فزاینده ای با اعتبارات تأمین میشد و بیش از پیش تحت هدایت کاپیتالیست هایی قرار می گرفت که هدف اصلیشان رسیدن به منتهای سود در سرمایه بود. امپراتوری برپا شده توسط بانکداران و سوداگران ملبس به کتهای فراک و کلاه‌های استوانه‌ای، بر امپراتوری برپا شده توسط شاهان و اشراف ملبس به لباس های زربفت و جوشن های چیره شدند. امپراتوری های بازرگانی در تأمین مالی فتوحات خود به مراتب بسیار تر عمل میکردند. هیچ کس نمیخواهد مالیات بپردازد اما همه مایل به سرمایه گذاری هستند. در سال 1484 کریستوف کولوم از شاه پرتغال خواست تا ناوگانی را تأمین کند که قرار بود به قصد یافتن راههای جدید تجاری در آسیای شرقی به طرف غرب شناور شود. چنین اکتشافاتی معاملاتی بسیار پرخطر و پرخرج بودند. مبالغ گذافی لازم بود تا صرف ساختن کشتی ها، خرید تجهیزات و تدارکات و پرداخت حقوق به ملوانان و سربازان شود و هیچ زمانتی هم وجود نداشت که این سرمایه ها به سود دهی برسند. شاه پرتغال این تقاضا را رد کرد. کلوب هم مثل دیگر کارا فرینان تازه کار امروزی تصنیم نشد. او اندیشه خود را برای سرمایه گذاران دیگر در ایتالیا، فرانسه، انگلستان و مجدداً پرتغال تشریح کرد و هر بار جواب منفی گرفت. سپس بخت خود را با فردیناند و ایزابلا و حاکمان جدید اسپانیای تازه متحد شده بازمون گذاشت و چند مذاکرهگر مجرب را هم برای مذاکره با خود برد و با کمک آنها توانست ملکه ایزابلا را راضی به سرمایه گذاری کند. همانطور که هر بچه مدرسه می داند ایزابلا یک برنده بزرگ بود. اکتشافات کلمب اسپانیایی‌ها را قادر کرد تا آمریکا را فتح کنند، معادن طلا و نقره در آنجا برپا کنند و کشتزارهای شکر و تنباکو دایر کنند و شاهان، بانکداران و بازرگانان اسپانیایی را به چنان ثروتی برسانند که هرگز در خواب هم نمی‌دیدند. صد سال بعد، شاهزاده‌ها و بانکداران آماده بودند تا اعتبار پیروان کلم را بسیار بیشتر افزایش دهند و به برکت جواهراتی که از آمریکا به دست آورده بودند، سرمایه بیشتری در اختیار داشتند. آنچه که به همان اندازه مهم بود این بود که شاهزاده‌ها و بانکداران اعتماد بیشتری به قابلیت‌های فعالیت‌های اکتشافی داشتند و بیشتر مایل به پشتیبانی مالی از آنها بودند. این همان چرخه‌ی سهرامیز کاپیتالیسم امپریالیستی بود اعتبار اکتشافات جدید را تامین مالی می‌کند اکتشافات به مستعمرات می‌انجامند مستعمرات سود میآفرینند سود اعتماد را تقویت می‌کند و اعتماد اعتبار بیشتری باز میگرداند. نورهاچی و نادرشاه بعد از چند هزار کیلومتر سوخت تمام کردند در حالی که کارآفرینان کاپیتالیست توان مالی خود را بعد از هر تسخیری بیشتر کردند اما این فعالیت‌های اکتشافی اموری پرخطر بودند در نتیجه بازار اعتبارات همچنان محتاطان عمل می‌کرد بسیاری از هیئت‌های اکتشافی دستخالی خالی به با اروپا بازگشتند و هیچ چیز با ارزشی با خود نیاوردند برای مثال انگلیسیها سرمایه کلانی را بدون نتیجه صرف یک سفر اکتشافی کردند تا از شمال غرب و از راه قطب راهی آسیا شوند. بسیاری از دیگر هیئت‌های اکتشافی هرگز باز نگشتند. گاه کشتی‌ها با کوه‌های یخی برخورد می‌کردند، در توافن‌های استوایی غرق می‌شدند یا توأم دزدان دریایی می‌شدند. اروپاییان برای وسعت دادن به جمع سرمایه بالقوه و کاهش خطرات، اقدام به ایجاد شرکت سهامی با مسئولیت محدود کردند. به جای اینکه یک سرمایه گذار واحد تمامی پول خود را روی یک کشتی زهوار در رفته بگذارد، شرکت سهامی سرمایه لازم را از شمار زیادی از سرمایه گذاران میکرد که هر کدام سهم کوچکی از سرمایه خود را به خطر می‌انداختند. به این ترتیب زیان‌ها کمتر میشد اما محدودیتی برای سود وجود نداشت. حتی سرمایهگذاری کوچکی روی یک کشتی درست می فرد را میلیونر کند. اروپای غربی تی دهه‌ها شاهد تکامل نظام مالی پیشرفت بود که می با یک آگهی ضررب عجل مقادیر بسیار زیادی اعتبارات گردآوری کند و در اختیار کارآفرینان خصوصی و دولتها قرار دهد. چنین نظامی می در فراهم کردن سرمایه لازم برای فتوحات و سفرهای اکتشافی بسیار موثرتر از هر پادشاه و امپراتوری باشد. نیروی تازه کشف شده اعتبارات را در مبارزه شدید میان اسپانیا و هلند بهتر میتوانید اسپانیا در قرن 16 هم با داشتن یک امپراتوری جهانی گسترده، قدرتمندترین دولت اروپا بود و بر قسمت‌های وسیعی از اروپا، بخش‌های پهناوری از آمریکای شمالی و جنوبی، جزایر فیلیپین، حکومت میراند و یک سلسله پایگاه در امتداد سواحل آفریقا و آسیا داشت. هر ساله ناوگان‌های سنگینی از گنج از آمریکا و آسیا به بنادر سویلا و کاردیز باز میگشتند. هلند یک باتلاق کوچک و طوفانی فاقد منابع طبیعی بود که گوشه کوچکی از قلم روی اسپانیا محسوب می شد. که اساساً پروتستان بودند در سال 1568 علیه سرکرده کاتولیک اسپانیایی شوریدند. در ابتدا به نظر می رسید که شورشی ها نقش دونکی شط را بازی می کنند که شجاعانه به آسیاب های بادی شکست یورش می برد. اما طی 80 سال هلندی ها نه تنها استقلال خود را از اسپانیا تضمین کردند بلکه توانستند جای اسپانیایی ها و متحدین پرتغالیشان را که فرمان روایان شاه آبی بودند بگیرند و امپراتوری جهانی هلند را برپا سازند و ثروتمندترین دولت اروپا شوند راز موفقیت هلند اعتبار بود شهرنشینان هلندی که علاقه چندانی به مبارزه در خشکی نداشتند، ارتش مواجب بگیر استخدام میکردند تا برایشان با اسپانیا بجنگد. خود هلندیها در همین اسنا در کشتی های بزرگ راه به آب ها می سپردند. بگیر و نافگان های مسلح به توبخانه مخارج زیادی داشتند، اما هلندیها آسانتر از امپراتوری قدرتمند اسپانیا قادر به تأمین مخارج نظامی خود بودند زیرا اعتماد نظام مالی روبه اروپا را جلب کردند اما شاه اسپانیا سهلنگارانه اعتبار خود را از دست میداد سرمایه‌گذاران اعتبار ها را برای ارتش و ها به حد کافی افزایش دادند و این ارتش‌ها و ناوگان‌ها سلطه هلند را بر راه‌های بازرگانی دنیا فراهم کردند که این به نوبه خود متضمن سودهای کلانی برای آنها بود این سودها به هلند امکان بازپرداخت قروزش را میداد و این باز هم اعتماد سرمایه‌گذاران به این کشور را بیشتر تقویت می‌کرد آمستردام به سرعت نه تنها یکی از مهمترین بندرهای اروپا بلکه همچنین قطب مالی قاره اروپا شد. هلند دقیقاً چطور اعتماد نظام اعتباری را جلب کرد؟ اولین اینکه آنها در باز های به موقع و کامل بدهی های خود دقیق بودند و این امنیت اعتباریشان را نزد وامدهندگان دهندگان بیشتر میکرد؟ سانیان این که نظام قضایی کشورشان استقلال داشت و از حقوق فردی بلعخص حق مالکیت خصوصی حمایت میکرد. سرمایه از دولتهای دیکتاتوری که نمیتوانند از حقوق فردی و مالکیت آنها حمایت کنند گریزد و به قلمرو دولتهایی سرازیر میشود که پاسدار حاکمیت قانون و مالکیت خصوصی هستند. تصور کنید که شما پسر یک خانواده مرفه سرمایهگذار آلمانی هستید پدر شما موقعیت را مناسب می بیند تا کسب و کارش را از طریق ایجاد شعبه هایی در شهرهای بزرگ اروپایی گسترش دهد او شما را به آمستردام و برادر جوانتر شما را به مادرید میفرستد و به هر کدام از شما ده هزار سکه طلا برای سرمایه گذاری می دهد برادر شما سرمایه افتتاحی خود را در مقابل بهره به شاه اسپانیا وام می‌دهد که برای برپا کردن یک ارتش برای نبرد با شاه فرانسه به آن نیاز دارد. شما اما تصمیم می‌گیرید سرمایه خود را به یک تاجر هلندی وام بدهید که می‌خواهد آن را روی بیابانی در انتهای جنوب یک جزیره متروک به نام مانهاتان سرمایه‌گذاری کند. با اطمینان از اینکه به محض اینکه که روده هاتسون به شاهراه تجاری بدن شود ارزش ملک به شدت بالا خواهد رفت قرار بر این است که هر دوی این وامها ها ظرف یک سال باز پرداخت شود یک سال سپری می شود تاجر هلندی زمینی را که خریده با سود بالا می فروشد و پول شما را با بهرهی که وعده داده بود باز پرداخت می کند پدر شما از این بابت خوشحال می شود اما برادر جوانتر شما در مادرید ناراحت است. جنگ با فرانسه به نفع شاه اسپانیا تمام شده، اما او اکنون درگیر جنگ با ترک هاست و به هر تکسکه موجود برای تأمین مالی جنگ جدید نیاز دارد و فکر می کند که این مهمتر از باز پرداخت بدهی های گذشته است. برادر شما شروع به نامنگاری به قصر می کند و از دوستانش تقاضای پادرمیانی می کند اما به جایی نمیرسد. برادر شما نه تنها بهره وعده داده شده را دریافت نکرده بلکه همه سرمایه اش را هم از دست داده. پدر شما از این بابت نخوش است. حال اوزا از این هم وخیم تر می شود، و شاه یکی از مسئولین خزانه داری را میفرستد تا در کمال گستاخی از برادر شما تقاضای دریافت وام دیگری به همان میزان مبلغ قبلی نماید. برادر شما هیچ پولی برای قرض دادن ندارد. او تی نامهای پدرش را متقاعد می کند که این بار شاه مشکل را حل خواهد کرد. پدر خانواده نمیخواهد روی پسر کوچکش را زمین بگذارد و با خاطر آزرده با تقاضای او موافقت می کند. ده هزار سکه طلای دیگر در خزانهداری اسپانیا بدون ردی ناپدید می شود. در همین لحظه در آمستردام همه چیز خوب پیش می رود. شما بارها و بارها به بازرگانان هلندی وام می‌دهید و سرمایه خود را به طور کامل سر موعد باز دریافت می کنید. اما وقت همیشه با شما یار نیست. یکی از مشتری های همیشگی شما شنیده که نوعی کفش تخت چوبی در پاریس به زودی مود روز خواهد شد و برای تاسیس یک فروشگاه بزرگ کفش در پایتخت فرانسه از شما تقاضای وام می کند. شما وام را می دهید اما متاسفانه آن کفش تخت چوبی نظر خانم های فرانسوی را جلب نمی کند و تاجر ناموفق از باز پرداخت وام شما خودداری می کند. پدر شما شدیداً خشمگین است و از هر دوی شما می‌خواهد تا وکلا را وارد معرکه کنید. برادر شما در مادرید علیه شاه اقامه دعوا کند و همزمان شما هم همین کار را در آمستردام علیه تولید کننده ی ورشکسته کفش تخت چوبی انجام می دهید. در اسپانیا محکمه ها تابع اوامر شاه هستند و قضات به نفع او رای می دهند. در غیر این صورت از طرف او مجازات خواهند شد. در هلند دستگاه قضایی و دولت از هم جدا هستند و مستقل از افراد و شاهزادگان عمل می کنند. دادگاه مادرید درخواست برادر شما را رد می کند اما دادگاه آمستردام به نفع شما رأی می دهد و اموال تاجر کفش و تخت چوبی را زبط می کند و او را ملزم به بازپرداخت بدهیش می کند. پدر شما از این همه درس می گیرد. معامله باید ترجیحاً با تجار در هند باشد، نه با شاهان در مادرید. گرفتاری های برادر شما هنوز تمام نشده. شاه اسپانیا در شرایط استیصال قرار دارد و برای ارتشش نیاز به پول بیشتری دارد. او مطمئن است که پدر شما موجودی نقدی دارد. او مدارک جعلی برای متهم کردن برادر شما به خیانت تنظیم می کند. اگر برادر شما مبلغ بیست هزار سکه طلا نپردازد بلافاصله فاصله روانه سیاه جال می شود و تا لحظه مرگش در آنجا می ماند تا بپوسد. طاقت پدر شما به سر آمده او خونبه ها را برای رهایی پسر عزیزش میپردازد اما قسم میخورد که دیگر با کسی در اسپانیا معامله نکند او شاخه مادرید خود را تعطیل می کند و برادر شما را به روتردام میفرستد اکنون وجود دو شاخه در هلند فکر خوبی به نظر می رسد او میشنود که حتی سرمایه گذاران اسپانیایی هم سرمایه خود را به صورت قاچاق از کشور خارج می کنند آنها هم به این نتیجه رسیدهاند که اگر بخواهند ثروتشان را حفظ کنند و برای معاملات بیشتری از آن استفاده کنند بهتر است در جاهای سرمایهگذاری کنند که حاکمیت قانون برقرار است و مالکیت خصوصی مورد احترام است مثلا در هلند بدین ترتیب همزمان با اینکه شاه اسپانیا اعتماد گذاران را از دست می‌داد تاجران هلندی این اعتماد را به خود جلب می‌کردند پس این بازرگانان هلندی بودند که امپراتوری هلند را برپا کردند نه دولت هلند شاه اسپانیا کماکان تلاش می‌کرد تا خزینه‌های فتوحاتش را از طریق بالا بردن مالیات‌ها از مردم ناراضی تامین کند در حالی که بازرگانان هلندی فتوحاتشان را با وام گرفتن و فروختن سهام شرکت هایشان میکردند می کردند که به صاحبان سهام امکان بهرهوری از سود شرکتها را میداد سرمایه‌گذاران محتاطی که هرگز نمی‌خواستند پولشان را به شاه اسپانیا بدهند و قبل از دادن اعتبار به دولت هلند همه اطراف و جوانب را میسنجیدند و ثروتشان را با رقابت در شرکت‌های سهامی هلندی سرمایه‌گذاری کردند که نقطه اتکای امپراتوری جدید بودند. شاید شما مایل باشید سهام شرکتی را بخرید که سودهای کلانی به دست آورده اما سهام موجود فروخته شد ولی شما می توانید آن سهام را با قیمتی گرانتر از دیگر سهام بخرید اما اگر سهام شرکتی را خریده اید که بعدها در تنگنا قرار گرفته شاید سعی کنید سهام خود را با قیمتی کمتر به دیگران بفروشید در نتیجه خرید و فروش سهام منجر به ایجاد بازارهای بورس سهام در اکثر شهرهای اروپایی شد. مشهورترین شرکت سهامی هلندی به نام و او که در سال 1602 به ثبت رسید یعنی درست در مقطعی که هلندیها خود را از قید نفوذ ها خلاص میکردند و هنوز قرش توبخانه اسپانیایی از فاصله نچندان دوری از استحکامات آمستردام شنیده میشد. و اوکه از پولهایی که از فروش سهام به دست می برای ساختن کشتی ها و فرستادن آنها به آسیا و وارد کردن کالاهای چینی، هندی و اندونزیایی استفاده می‌کرد. از این سودها همچنین برای تأمین مالی عملیات جنگی این شرکت علیه کشتی های رقیب و دوستان دریایی استفاده می‌شد. سرانجام این و اوکه بود که هزینه های تسخیر اندونزی را تامین کرد. اندونزی بزرگترین مجمع الجزایر دنیا است. هزاران هزار جزیره اش در اوایل قرن 17 توسط صدها شاه و شاهزاده، سلطان و قبیله اداره میشد. وقتی و اوکه اولین بار در سال 1603 به اندونزی رسید، فقط اهداف تجاری داشت. با این وجود تاجرین و اوکه برای تضمین منافع تجاری خود و به حد اکثر رساندن سود سهامداران علیه فرمانروایان محلی که تعرفه های گمرکی سنگینی طلب میکردند و همچنین علیه رقبای اروپایی خود وارد جنگ شدند و اوکه کشتی های تجاری خود را به توبخانه مجهز می کرد از سربازان اجیر شده اروپایی، ژاپنی، هندی و اندونزیایی استفاده میکرد برج و بارو میساخت و نبردها و محاسره ها را هدایت میکرد. این اقدامات شاید به نظر ما عجیب جلوه کند اما در اوایل عصر نوین برای شرکت های خصوصی مرسوم بود که نه تنها سرباز اجیر شده بلکه ژنرال و دریا سالار توبخانه و کشتی و حتی یک ارتش کامل را به کار گیرند. جامعه بین‌المللی این همه را بدیهی میپنداشت و با دیدن اینکه یک شرکت خصوصی یک امپراتوری برپا کند، خم به ابرو هم نمیآورد. جزیره ها یکی پس از دیگری تسلیم سربازان بوقه شدند و بخش بزرگی از اندونزی به مستعمره آن بدل شد. و اوکه نزدیک به دویست سال بر اندونزی حکومت کرد. در سال 1800 دولت هلند کنترل اندونزی را به دست گرفت و خیه 150 سال بعد آن را به مستعمره ملی خود بدل کرد. امروزه بعضی ها هشدار می دهند که در قرن 21 شرکت ها دارای قدرت بسیار زیادی هستند. تاریخ ابتدای اصر نشان می دهد که اگر به شرکت های تجاری میدان داده شود، برای رسیدن به منافع افسار گسیخته خود حاضرند تا کجا پیش بروند. هنگامی که وقع در اقیانوس هند عمل می کرد شرکت هلندی هند غربی یا ویک در آبهای اقیانوس اطلس در تردد بود ویک برای اعمال کنترل بر تجارت رود مهم هادسان پایگاهی به نام نیو آمستردام در جزیره ای در دهانه رود تأسیس کرد این مستمره از طرف سرخپوستان تهدید می شد و کارران توسط انگلیسیها مورد حمله قرار گرفت که در نهایت در سال 1664 تسخیرش کردند. انگلیسیها اسم آن را به نیویورک تغییر دادند. بقایای دیواری که ویک ساخته بود تا از مستعمره‌اش در مقابل و و انگلیسیها دفاع کند، اکنون در زیر آسفالت مشهورترین خیابان دنیا، وال استریت قرار گرفته. در اواخر قرن هفدهم، خودشیفتگی و جنگ‌های قاره‌ای پرخرج باعث شد تا هلند نه تنها نیویورک بلکه همچنین جایگاه خود به عنوان موتور مالی و امپراتوری اروپا را از دست بدهد. برای پر کردن جای خالی هلند، بین فرانسه و بریتانیا رقابت شدیدی در گرفت. در آغاز به نظر می رسید که فرانسه در موقعیت بسیار برتری قرار داشته باشد زیرا بزرگتر و قنیتر از بریتانیا بود جمعیت بیشتری داشت و دارای یک ارتش گسترده تر و مجربتر از بریتانیا بود با این حال بریتانیا موفق شد اعتماد نظام مالی را جلب کند اما فرانسه عدم شایستگی خود را به نمایش گذاشت رفتار شاه فرانسه خصوصا به دنبال گسترده ترین بحران مالی قرن 18 اروپا که به حباب میسیسیپی شهرت یافت مایه بدنامی و رسوایی بود این ماجرا هم با شکل یک شرکت سهامی امپراتوری ساز شروع شد در سال 1717 شرکت میسیسیپی که در فرانسه به ثبت رسید در صدد استعمار درره پایینی میسیسیپی برآمد و شهر نیو ارلان را برپا کرد. این شرکت که ارتباط خوبی با دربار لوی پانزده داشت برای تأمین مالی این برنامه های بلند پروازانه اش اقدام به فروش سهامش در بازار بورس پاریس کرد. جان لاف مدیر شرکت همزمان رئیس بانک مرکزی فرانسه هم بود و علاوه شاه او را به مقام ناظر کل مالی منصوب کرد که معادل امروزی آن وزیر دارایی است در سال 1717 دره پایینی میسیسیپی چیزی بیش از باتلاق و تمساه برای عرضه نداشت اما شرکت میسیسیپی شایعهایی مبنی بر موقعیت‌های شگفت‌انگیز و های نامحدود منتشر کرد. ابتداعان، تجار و بیشور حال شهری فرانسه قربانی این وسوسه‌ها شدند و قیمت سهام میسیسیپی شدیدا بالا رفت. ابتدا هر سهم به 500 لیور فروخته میشد. در اول اوت 1719 قیمت هر سهم به 2750 لیفر افزایش پیدا کرد. سیوم اوت این قیمت تا 4100 لیفر بالا رفت و در 4 سپتامبر به 5000 لیفر رسید. در دوم دسامبر قیمت هر سهم میسیسیپی به مرز 10000 لیفر رسید. شور و شوق قیابانهای پاریس را فرا گرفت. مردم همه چیز خود را میفروختند یا وام های کلان می گرفتند تا سهام میسیسیپی را بخرند همه گمان میکردند راه ساده پولدار شدن را پیدا کردند اما چند روز بعد وحشت مستولی شد تعدادی از بورس بازان پیبردند که قیمت های سهام کاملا غیر واقعی و ناپایدار است و به این نتیجه رسیدند که سهام را هنگامی که در اوج قیمت خود است بفروشند. وقتی عرضه سهام موجود افزایش یافت قیمت هم پایین آمد. وقتی دیگر سرمایهگذاران متوجه پایین رفتن قیمت شدند تصمیم گرفتند که به سرعت از میدان خارج شوند. قیمت سهام باز هم نزور کرد و این یک سقوط بهمنوار را به دنبال داشت. بانک مرکزی فرانسه به ریاست جان لاو سهام میسیسیپی را خریداری کرد تا قیمتها ثابت بمانند اما نمیتوانست تا ابد به این کار ادامه دهد سرانجام موجودی بانک تمام شد بعد از این اتفاق ناظر کل مالیه یعنی همان جان لاف، مقرر کرد که پول بیشتری چاپ شود تا بتوانند سهام بیشتری بخرند این کار کل نظام مالی فرانسه را در درون یک حباب قرار داد. اما حتی این جادوگری مالی نتوانست نظام را نجات دهد. قیمت سهام سی, سی پی از ده هزار لیفر به هزار لیور سقوط کرد و بعد کاملا ارزش شد. اکنون دیگر بانک مرکزی و خزانهداری سلطنتی به جز انبوهی سهام ارزش آه در بساط نداشتند. بورسوازان بزرگ از این محلکه جان سالم به دربردند چون به موقع سهامشان را فروختند اما سهامداران کوچک همه چیز خود را از دست دادند و بسیاری دست به خود کشی زدند. حباب سی سی پی یکی از برجسته ترین مالی تاریخ بود. نظام مالی سلطنتی فرانسه هرگز به طور کامل از این ضربه کمر راست نکرد. استفاده شرکت میسیسیپی از نفوذ سیاسیش برای دخل و تصرف در قیمت سهام و دامن زدن به تب خرید سهام باعث شد که مردم اعتماد خود را به نظام بانکی فرانسه از دست بدهند و درایت شاه را زیر سؤال ببرند. کسب اعتبار برای لویی 15 دشوارتر و دشوارتر میشد. این یکی از عوامر اصلی مقور شدن امپراتوری برونمرزی فرانسه در مقابل انگلیسی ها بود. همزمان که انگلیسی ها می توانستند با نرخ بهره پایین وام بگیرند، فرانسه برای گرفتن وام با مشکل مواجه بود و ناچار بود بهره‌های سنگینی بپردازد. به شاه فرانسه ناچار شد برای تأمین پول جهت پرداخت بدهی های فضایندهش مکررن با بهره‌های سنگین و سنگین تر پول قرض کند. سرانجام در دهه 1780 لوی 16 که بعد از مرگ پدر بزرگش بر تخت شاهی نشسته بود پیبرد برد که نیمی از بودجه سالانه به بازپرداخت بهره وام اختصاص دارد و خود را در مرز ورشکستگی یافت. لوی شانسه در سال 1789 علا میل خود با احزار جلسه عمومی پارلمان فرانسه که تیه یک و نیم قرن گذشته هیچ گرد همایی نداشت خواستار بحث و یافتن راه حلی برای بحران جاری شد. این سراغاز انقلاب فرانسه شد. در حالی که امپراتوری برون مرزی فرانسه رو به زوال می رفت، امپراتوری بریتانیا به سرعت گسترده می شد. امپراتوری بریتانیا همانند امپراتوری هلند در گذشته تا حدود زیادی بر شرکت شرکت‌های سهامی خصوصی در بازار بورس لندن استوار شده بود و عمل می‌کرد. اولین مستعمرات بریتانیا در آمریکای شمالی در اوایل قرن 17 هم توسط شرکت‌های سهامی مثل کمپانی لندن، کمپانی پلیموس و کمپانی دورچستر استقرار یافتند. شپقاره هند هم توسط ارتش عجیر شده کمپانی هند شرقی بریتانیا تسخیر شد، نه توسط دولت بریتانیا. این کمپانی در قابلیتهایش حتی از و اوکه هم پیشی گرفت. این شرکت از مقر اصلیش در لندن برای حدود یک قرن امپراتوری قدرتمندی را در هندوستان اداره می کرد و نیروی نظامی عظیمی را مرکب از 350 هزار سرباز در آنجا مستقر ساخت که از حیث تعداد نفرات بیش از کل نیروهای مسلح پادشاهی بریتانیا بود. در سال 1858 بود که دولت سلطنتی بریتانیا هند و ارتش خصوصی کمپانی هند شرقی را ملی اعلام کرد. ناپل اون بریتانیایی ها را دست میانداخت و آنها را ملت مغازهدار می نامید. اما این مقازداران بر خود ناپل اون هم چیره شدند و امپراتوریشان پهناورترین امپراتوری در تمام دنیا بود. به نام سرمایه ملیسازی اندونزی توسط شاه هلند در سال 1800 و ملی سازی هند توسط شاه بریتانیا در سال 1858 به پیوند میان کاپیتالیسم و امپراتوری خاتمه نداد بلکه برعکس آن را در طی قرن 19 مستحکم تر کرد شرکت های سهامی دیگر نیازی به برپایی مستعمرات خصوصی و اعمال حاکمیت بر آنها نداشتند کارگزاران آنها و سهامداران بزرگ این اهرم‌های قدرت را در لندن، آمستردام و پاریس در دست داشتند و می توانستند برای دفاع از منافعشان روی دولت حساب کنند. همانطور که مارکس و دیگر منتقدین اجتماعی به کنایه خاطرنشان ساختند، دولت‌های غربی اتحادیه کاپیتالیستی شده بودند. جاستت ترین نمونه اولین جنگ تنباکو میان بریتانیا و چین بین سالهای 1840 تا 1842 بود که نشان می‌داد چطور دولتها از سرمایه بزرگ اطاعت می‌کردند. در نیمه اول قرن 19، هم، کمپانی هند شرقی بریتانیا و تجار گوناگون با صدور مواد مخدر به خصوص تریاک به چین ثروتها اندوختند. میلیون‌ها چینی به اعتیاد رو آوردند که این کشور را از نظر اقتصادی و اجتماعی تضعیف کرد. در اواخر دهه 1830 دولت چین ورود مواد مخدر به کشور را ممنوع کرد اما تجار انگلیسی به راحتی این قانون را نادیده می‌گرفتند. مسئولین شروع به مصادره و تخریب های مخدر کردند. کارتل‌های مواد مخدر ارتباطات نزدیکی با وستمینستر و داونینگ استریت داشتند. در حقیقت، بسیاری از نمایندگان مجلس و وزرا در کمپانی‌های مواد مخدر سهام داشتند و بر دولت بریتانیا فشار می‌آوردند. در سال 1840، انگلیس تحت عنوان آزادی تجارت به چین اعلان جنگ کرد. اما این نبرد برابری نبود. نیروهای مغرور از پس سلاحهای جدید و حیرت بریتانیایی مثل کشتیهای بخار، توپخانه سنگین، راکت و اسلحههای با سرعت شلیک سریع بر نیامدند. در معاهده سالهی که به دنبال آمد، چین پذیرفت که محدودیتی برای فعالیت های تاجران بریتانیایی مواد مخدر ایجاد نکند و خساراتی را که پلیس چین به آنها وارد کرده بود جبران کند. علاوه بر آن بریتانیایی‌ها خواستار سلطه بر هنگ کنگ شدند و آن را هم به دست آوردند تا از آنجا به عنوان پایگاهی مطمئن برای واردات مواد مخدر استفاده کنند. هنگ کنگ تا سال 1997 در دست بریتانیا باقی ماند. اواخر قرن 19 هم در حدود 40 میلیون چینی یعنی یک دهم ده از جمعیت کشور به تریاک اعتیاد داشتند. مصر هم آموخت تا به بازوان دراز کاپیتالیسم بریتانیا احترام بگذارد. سرمایه گذاران فرانسوی و بریتانیایی در طی قرن 19 مبالغ هنگفتی به حاکمان مصر وام دادند. ابتدا برای تأمین مالی پروژه ساخت کانال سوئز و بعدها برای سرمایه روی فعالیت های کمتر موفق. به دهی های مصر افزایش یافت و وامدهندگان اروپایی به طور روزافزونی در امور تجاری مصر سحیم شدند. در سال 1881 کاسه صبر های مصری لبریز شد و به شورش دست زدند و به طور یکجانبه های خارجی را لغو کردند. ملکه ویکتوریا از این بابت خوشنود نبود. او یک سال بعد ارتش و ناوگان خود را به نیل فرستاد و مصر تا بعد از جنگ جهانی دوم به یک کشور تحت قیمومیت بریتانیا تبدیل شد. اینها تنها جنگ نبود که برای دفاع از منافع سرمایه به وعو پیوست. در واقع خود جنگ می یک کالا باشد درست مثل تریاک. در سال 1821 یونانی ها علیه امپراتوری عثمانی قیام کردند. حتی لورد بایرون شاعر به یونان سفر کرد تا در کنار شورشی ها بجنگد. اما سرمایه گذاران لندن حتی از این امر هم به عنوان یک فرصت استفاده کردند. آنها به رهبران شورشی پیشنهاد کردند که برای شورشیان یونانی اوراق قرزه خرید و فروش منتشر کنند و در بازار بورس لندن بفروشند. یونانی ها هم قول دادند که تا اگر و در زمانی که به استقلال رسیدند، این اوراق را با بهره باز خرید کنند. سرمایه‌گذاران خصوصی برای کسب سود یا برای همدلی با یونانی ها یا هر دو اوراقشان را می‌خریدند. ارزش اوراق قرزه یونانی در بازار بورس لندن بالا و پایین می‌رفت و این نوسان‌ها ها بسته به شکست ها و پیروزی در میدان های نبرد بود. ترکها به تدریج ابتکار را به دست گرفتند. با نزدیک شدن شکست شورشیها، صاحبان اوراق بهادار با خطر از دست دادن تمام سرمایه هایشان روبرو شدند. منافع صاحبان اوراق بهادار در گروه مسلحت ملی بود. پس بریتانیا یک ناوگان بین‌المللی تدارک دید و در سال 1827 ناوگان کوچک اصلی عثمانی را در نبرد ناورینو غرق کرد. یونان پس از قرنها انقیاد بالاخره آزاد شد اما این آزادی با مبلغ هنگفتی بدهی همراه بود که این کشور جدید از بازپرداختش ناتوان بود اقتصاد یونان دهه های بعدی در گرو سرمایه‌گذاران بریتانیایی بود هماقوشی سرمایه و سیاست پیامدهای دامنه داری برای بازار اعتبارات داشت حجم اعتبارات در اقتصاد تنها به عوامل اقتصادی مثل کشف نفت جدید یا ابداع یک ماشین جدید وابسته نبود و توسط وقایع سیاسی مثل تغییر رژیمها یا سیاستهای خارجی جاهطلبانه هم رقم میخورد بعد از نبرد ناوارینو های بریتانیایی بیشتر از گذشته علاقمند به سرمایهگذاری روی امور پرخطر خارجی شدند آنها میدیدند که اگر یک بدهکار خارجی از بازپرداخت بدهی خود سربا زند، ارتش علهذرت آن پول را برایشان پس میگیرد. به این دلیل است که امروزه بنیه اعتباری کشوری بیش از آنکه متأثر از موقعیت طبیعیش باشد تابع رفاه اقتصادی آن است. بنیه اعتباری نشانگر این امکان است که کشوری قادر به بازپرداخت پرداخت بدهیش است. علاوه بر های اقتصادی محض، عوامد سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی هم به حساب میآید. یک کشور نفخیز که در چنگال یک رژیم مستبد، جنگ داخلی و نظام قضایی فاسد گرفتار است، دارای بنیه اعتباری پای است. در نتیجه این کشور احتمالاً در فقر نسبی به سر خواهد برد، زیرا قادر نخواهد بود تا سرمایه کافی برای استفاده حد اکثری از نفت خود را فراهم کند. یک کشور فاقد منابع طبیعی که در صلح به سر و از یک نظام قضایی منصفانه و دولتی آزاد برخوردار است، احتمالاً از بنیه اعتباری بالایی برخوردار است، از این رو این کشور می تواند با نرخ بهره پایین به اندازه کافی برای ایجاد یک نظام آموزشی خوب سرمایه فراهم کند و یک صنعت شکوفا با تکنولوژی پیشرفته به راه اندازد. آین بازار آزاد سرمایه و سیاست آنچنان بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند که رابطه آنها با حرارت در میان اقتصاددانان، سیاستمداران و توده‌های مردم مورد بحث قرار می‌گیرد. های افراتی مشتاقانه استدلال می‌کنند که سرمایه می‌باید آزادانه بر سیاست تسلط داشته باشد، اما سیاست نباید اجازه کنترل سرمایه را داشته باشد. آنها معتقدند که وقتی حکومت‌ها در امور بازار دخالت می‌کنند منافع سیاسی منجر به سرمایه‌گذاری‌های غیرعاقلانه خواهد شد که این به نوبه خود کند شدن چرخ‌های توسعه را به دنبال دارد برای مثال یک حکومت می‌تواند مالیات سنگینی بر صنایع ببندد و از این پول برای دادن بیمه بیکاری سخاوتمندانه استفاده کند که سیاست جذابی در انتخابات است از بسیاری از اقتصاددانان بسیار بهتر خواهد بود که حکومت به آنها اجازه میداد تا این پولها را نزد خود نگه دارند. به گفته آنها از این پولها میتوان در راهاندازی کارخانه های جدید و استخدام بیکاران استفاده کرد. از این زاویه ترین سیاست اقتصادی این است که سیاست را از اقتصاد جدا نگه داریم، مالیات ها را کم کنیم مقررات حکومتی را به حداقل برسانیم و اجازه دهیم نیروهای بازار آزاد بر فعالیتهایشان حاکم باشد باز شدن دست سرمایه‌گذاران خصوصی، فارغ از قیود ملاحظات سیاسی، امکان سرمایه‌گذاری بر پرسودترین عرصه ها را به آنها میدهد. بنابراین راه مطمئنی برای بیشترین شکوفایی اقتصادی که هم به نفع صاحبان سنایه است و هم به نفع کارگران دخالت هرچه کمتر حکومت است. این آموزه بازار آزاد امروزه عمومیترین و نافذترین نوع نگرش آین کاپیتالیستی است. مشتاقترین حامیان بازار آزاد، ماجراجوی های نظامی خارجی و برنامه های رفاهی داخلی را به یک اندازه زیر سوال میبرند. اندرزهای های این ها به حکومت همان توصیه های پیشوایان آین بودایی به پیروان خود است. هیچ کاری نکن. اما اعتقاد افراتی به بازار آزاد به اندازه اعتقاد به بابا نوئل زاد است در حقیقت هیچ بازار آزادی وجود ندارد که از دخالتهای سیاسی بری باشد مهمترین منبع اقتصادی اعتماد به آینده است و این منبع همواره توسط دزدان و شارلاتانها مورد تهدید قرار میگیرد بازار به خودی خود هیچ اقدامی بر علیه تقلب دزدی و خشونت نمی کند، این وظیفه نظامهای سیاسی است که اعتماد را با وضع قوانین و ایجاد محدودیت‌های قانونی علیه متقلبان تضمین کنند و با استقرار و حمایت از نیروی پلیس، قوه قضاییه و ها حکومت قانون را برقرار سازند. وقتی شاهان در انجام وظایفشان در تنظیم معقولانه بازار قصور کنند، اعتماد از بین می رود و اعتبارات کاهش می‌یابد و رکود اقتصادی بر جامعه حاکم می‌شود. این درسی بود از حباب میسیسیپی در سال 1719 و آنها که این را فراموش کردند در حباب مسکن آمریکا در سال 2007 و بحران اعتباری و رکود اقتصادی پس از آن دست و پا زدند. دلیل باز هم مهمتری وجود دارد که حاکمیت کامل بازار آزاد را امری خطرناک داند. آدام اسمیت فکر میکرد که کفاش از سود خود برای استخدام دستیاران بیشتر استفاده خواهد کرد. این به این معنی بود که تمع خودمهور به نفع همه خواهد بود زیرا از سود برای گسترش تولید و استخدام بیشتر نیروی کار استفاده خواهد شد. اما چه اتفاقی خواهد افتاد اگر کفاش هریس سود خود را از طریق پرداختن حقوق کمتر به کارکنان و بالا بردن ساعت کار آنها تمین کند؟ پاسخ معمول این است که بازار آزاد از کارگر دفاع خواهد کرد. اگر کفاش ما حقوق کمتری به و توقع زیادی داشته باشد، بهترین کارگران طبعاً او را رها می کنند و برای رقیبش کار می کنند. آنگاه کفاش مستبد با بدترین کارگرها تنها می ماند یا اینکه همه کارگرها را از دست خواهد داد. او ناچار خواهد شد تا در روشش تجدید نظر کند یا کسب را کنار بگذارد. مع خود او وادارش می کند تا با کارگرانش به خوبی رفتار کند. در عالم نظر مولای درز این نظریه نمی روید. اما در عمل به سادگی شکاف آن به وجود می آید. در یک بازار آزاد کامل، های حریص می توانند بدون نظارت شاهان و کشیشان انحصاراتی برپا کنند یا علیه نیروی کار خود تبانی کنند. اگر یک شرکت تنها بر تمامی کارخانجات کفش در کشور کنترل داشته باشد یا اگر همه صاحبان کارخانه‌ها با هم تبانی کنند و همزمان زمان را کم کنند، آنگاه کارگران دیگر نمی توانند با عوض کردن محل کار از خود حمایت کنند. از این هم بدتر، کارفرماهای حریص ممکن است با جریمه کردن کارگران آزادی عمل آنها را محدود کنند و آنها را به بیگاری وادارند. در اواخر قرون وستا، بردگی در اروپای مسیحی تقریبا ناشناخته بود. در اوایل دوران نوین، رشد کاپیتالیسم اروپایی با ظهور تجارت برده در مناطق اقیانوس اطلس همراه شد. مسبب این فاجعه نیروی افزار گسیخه بازار بود نه شاهان مستبد یا نظریه پردازان نژادپرست هنگامی که اروپایی‌ها آمریکا را تسخیر کردند به احداث معادن طلا و نقره و کشتزارهای شکر، تنباکو و پنبه پرداختند این معادن و مزارع رکن اصلی تولیدات و صادرات آمریکا شدند کشت شکر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود شکر در قرون وستا یک کالای لوکس و کمیاب در اروپا بود و از خاورمیانه به قیمتهای گذافی وارد می و با صرف جویی به عنوان یک ماده سری در خوراکهای خوشمزه و در داروی روغن مار استفاده می شود. پس از اینکه کشت گسترده شکر در آمریکا استقرار یافت، مقادیر فضاینده از آن به اروپا رسید. قیمت شکر کاهش یافت و اروپا اشتهای سیری‌ناپذیری به مصرف شیرینی پیدا کرد. کارآفرینان به این نیاز با تولید انواع متنوعی از شیرینی‌ها پاسخ دادند، مثل کیک‌ها، شیرینی‌ها، شکلات‌ها، ها و نوشابه‌های شیرین از قبیل کاکائو، قهوه و چای. مصرف متوسط سالانه شکر یک انگلیسی از صفر در اوایل قرن 17 هم به حدود 8 کیلو در اوایل قرن 19 افزایش یافت. اما کشت نیشکر و گرفتن شکر از آن متضمن کار بسیار سنگینی بود. افراد کمی بودند که مایل بودند ساعت طولانی در مزارع شکر آلوده به مالاریا بود در زیر آفتاب مناطق گرمسیری کار کنند. تولید برای مصرف انبوه با استفاده از کارگران قراردادی میتوانست بسیار گران تمام شود. مالکان اروپایی کشتزارها که تشنه سود و رشد اقتصادی بودند، متأثر از نیروی بازار به استفاده از برده ها رو آوردند. بین قرن 16 هم تا 19 هم در حدود 10 میلیون برده آفریقایی به با آمریکا وارد شد که در حدود 70 درصد از آنها در مزارع شکر کار میکردند. شرایط کاری بسیار نامناسب بود. اکثر بردگان یک زندگی کوتاه و رقتبار داشتند و میلیونها برده دیگر در مسیر راه طولانی از آفریقا به سواحل آمریکا یا در خلال جنگ‌هایی که برای به اسارت گرفتنشان در درمی‌گرفت، از پا در درمیآمدند. این همه برای این بود که اروپاییان بتوانند از چای شیرین و آبنبات خود لذت ببرند و تجار شکر بتوانند سودهای نجومی ببرند. دولت‌ها و حکومت‌ها هیچ کنترلی بر تجارت برده اعمال نمی‌کردند. این یک تجارت اقتصادی محض بود و توسط قانون بازار آزاد و بر اساس قانون عرضه و تقاضا سازماندهی و تأمین مالی می‌شد. شرکت‌های خصوصی تجارت برده سهم خود را در بازارهای آمستردام، لندن و پاریس میفروختند پایان طبقه متوسط که در جستجوی یک سرمایه گذاری خوب بودند، این سهام را می‌خریدند. شرکتها به کمک این پولها کشتی میخریدند سرباز و ملوان استخدام میکردند در آفریقا برده میخریدند و به آمریکا منتقل می کردند و در آنجا به صاحبان مزارع میفروختند و با سودهای آن محصولات مزارع را مثل شکر، کاکاو، قهوه، تنباکو، پنبه و عرق نیشکر میخریدند. آنها سپس به اروپا برمیگشتند. شکرها و پنبه ها را به قیمت خوبی می فروختند و برای دور دیگری به آفریقا سفر میکردند. سهامداران از این روال بسیار راضی بودند. در قرن هجدهم سود سرموی گذاری در تجارت برده در حدود 6 درصد در سال بود که بر اساس نظر مشاوران امروزی بسیار سودآور محسوب میشد. نقطه ضعف به بازار آزاد همین است، زیرا نمیتواند تضمین کند که سودشان از راه مناسبی به آید یا منصفانه توزیع شود. برعکس، ولع افسایش سود و تولید چشم مردم را به روی هر چیزی که بر سر راه باشد می‌بندد. در جایی که روشت بری از هر گود محدودیت و ملاحظه اخلاقی کمال مطلوب محسوب می شود، می به سادگی به فاجعه منجر شود. بعضی ادیان مثل مسیحیت و نازیسم میلیون نفر را بر پایه نفرت سوزان کشتند. کاپیتالیسم میلیون نفر را از روی توجهی سرد و حرص و طمع به کشتن داده تجارت برده مناطق اقیانوس اطلس ریشه در نفرت نجات پرستان علیه آفریقایی ها ندارد افرادی که سهام می‌خریدند دلالانی که آنها را میفروختند و مدیران شرکت‌های تجارت برده به ندرت به آفریقایی ها فکر می‌کردند مالکان مزارع شکر هم به آنها فکر نمی‌کردند بسیاری از مالکان دور از مزاره خود زندگی می کردند و تنها اطلاعاتی که خواستارش بودند حساب های رفته از سود و زرر بود. لازم به است که تجارت برده در مناطق اقیانوس اطلس تنها یک لکه آلوده بر یک کارنامه درخشان نیست. قحطی بزرگ بنگال که در بخش قبل مورد بحث قرار گرفت به شیوه مشابه ایجاد شد. کمپانی بریتانیا هند شرقی به سودش بیشتر از زندگی ده میلیون بنگالی اهمیت میداد هزینه عملیات نظامی وئوکه به اندونزی توسط ساکنین شهری هلندی تأمین می‌شد که به فرزندانشان عشق میورزیدند صدقه میدادند و از موسیقی خوب و هنرهای زیبا لذت می‌بردند. اما آنها هیچ توجهی به رنج ساکنین جاوا سوماترا و مالاکا نداشتند رشد اقتصاد نوین در سایر بخش های این سیاره با جرائم و جنایات بیشمار دیگری هم همراه بوده قرن نوزدهم موجب هیچ بهبودی در اخلاق کاپیتالیسم نشد انقلاب صنعتی که تمام اروپا را در گرفت صاحبان سرمایه و بانکها را ثروتمند کرد اما میلیونها کارگر را به یک زندگی فلاکتبار محکوم کرد وضعیت در مسمرات اروپایی باز هم بدتر از این بود. شاه بلژیک لئوپولد دوم در سال 1876 یک سازمان انسان دوستانه غیر دولتی را با هدف اکتشاف آفریقای مرکزی و مبارزه با تجارت برده در کرانه رود کنگو به وجود آورد. هدف همچنین بهبود شرایط زندگی بومیان از طریق راهسازی، ایجاد مدارس و بیمارستان بود. قدرت‌های اروپایی در سال 1885 پذیرفتند که کنترل مساحتی بالغ بر دو میلیون کیلومتر مربع از حوزه رود کنگو را به این سازمان بدهند. از آن به بعد این خطه که 75 برابر خاک بلژیک بود به عنوان دولت آزاد کنگو شناخته شد. اما هیچکس نظر اهالی این منطقه را نپرسید. بعد از مدت کوتاهی این سازمان انسان دوست به یک شرکت تجاری تبدیل شد که هدف اصلیش توسعه و سود بود. مدارس و بیمارستان به فراموشی سپرده شدند و حوضه کنگو از معادن و کشتزارها پوشیده شده بود که عملا توسط مقام های بلژیکی هدایت می شدند و بیرحمان بومیان را استثمار میکردند. صنعت لاستیک نمونه ای برجسته بود. لاستیک به سرعت به یک کالای صنعتی بدل شد و صدور آن منبع اصلی درآمد کنگو بود. روستاییان آفریقایی که لاستیک جمع می کردند ملزم شدند تا سهمیه بیشتر و بیشتری جمع کنند. آنهایی را که در جمع وری سحمیه تین شده موفق نمی شدند به دلیل تنبلی وحشیانه تنبیه می کردند و بازوهایشان را قطع می کردند. گاهی کل یک روستا قتل عام می شد. بر اساس خوشبینانه ترین تخمین ها بین سالهای 1885 و 1908 پیامدهای های کسب توسعه و سود به قیمت جان 6 میلیون نفر تمام شد که ادعقل 20 درصد از جمعیت کنگو بود. بعضی تخمین ها به رقم 10 میلیون نفر هم می رسد. از سال 1908 و به خصوص بعد از سال 1945، تمعه کاپیتالیستی به دنبال ترس از کمونیسم تا حدودی مهار شد، اما بیعدالتی هنوز حکم فرماست. که اقتصادی سال 2014 بسیار بزرگتر از کیک که که سال 1500 است اما آنچنان نامساوی تقسیم شده که بسیاری از دهقانان آفریقایی و کارگران اندونزی بعد از یک روز کار سخت با یک آیدی کمتر از آیدی پیشینیانشان در 500 سال قبل به خانه برمیگردند. رشد اقتصادی نوین ممکن است در تشابه بسیار با انقلاب کشاورزی یک فریب بسیار بزرگ باشد. گونه انسان و اقتصاد جهانی شاید به رشد ادامه دهد، اما ممکن است انسانهای بسیار بیشتری در فقر و گرسنگی زندگی کنند. کاپیتالیسم به این انتقاد دو پاس دارد. اول اینکه کاپیتالیسم جهانی را به وجود آورد که هیچ کس دیگری بجز خود کاپیتالیست ها قادر به اداره آن نیستند. تنها تلاش جدی برای اداره دنیا به گونه متفاوت کمونیسم بود که تقریبا از تمام جهات ممکن بسیار بدتر بود. و دیگر کسی رقابت به تکرار آن را ندارد. در سال 8500 قبل از میلاد، اواقب انقلاب کشاورزی شاید سزاوار گریه تلخی بود، اما دست برداشتن از کشاورزی دیگر دیر شده بود. به همان شکل ما شاید کاپیتالیسم را دوست نداشته باشیم اما نمی توانیم بدون آن زندگی کنیم. پاسخ دوم این است که ما به شکیبایی بیشتری نیاز داریم. بهشت یعنی وعده کاپیتالیستی همینجا در نزدیکی ماست. درست است که اشتباهاتی صورت گرفته مثل تجارت برده در مناطق اقیانوس اطلس و استثمار کارگران اروپایی. اما از اینها درس گرفته ایم و فقط اگر کمی بیشتر صبر کنیم و بگذاریم کیک کمی بزرگتر از این شود به هر کسی تکه بیشتری خواهد رسید. تقسیم هرگز نمیتواند به طور مساوی صورت گیرد اما به اندازه کافی وجود خواهد داشت تا هر مرد و زن و کودکی را راضی کند حتی در کنگو. در حقیقت نشانه های مثبتی وجود دارد حداقل اگر بخواهیم با میارهای مادی بسنجیم. مثلا طول عمر متوسط، مرگ و میر نوزادان و میزان مصرف کالوری بهتر شده. طول عمر متوسط یک انسان معمولی در سال 2014 علیرغم رشد تصاعدی جمعیت دنیا به طور برجسته ای بیشتر از آنچه چه که در 1914 بوده می باشد. اما آیا کیک اقتصادی می تواند تا ابد بزرگتر شود؟ هر کیکی نیاز به مواد خام و انرژی دارد. پیشگویان آخر زمانی اختار می کنند که انسان خردمند دیر یا زود تمامی مواد خام و انرژی موجود را به طور کامل مصرف می کند. بعد از آن چه اتفاقی خواهد افتاد؟